دوستای خوبم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. برای من افتخاریه که در مطالعه کتاب مقدس همراه شما باشم و خوشحالم که شما دارین بیشتر یاد میگیرین. خداوند خیمه بسیار مخصوصی برای ملاقات با قومش فراهم نمود. پرستشگاه و سیستم قربانی با پرستش همه به آمدن مسیح اشاره دارن. به بره بینقص خدا که گناه از دنیا برگرفت. بیایید به همراه معلممون از کلام خدا بشنویم. به کلاس دیگری از دانشکده یک کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. امروز در کتاب لاویان لازمه که بر آنچه کتاب مقدس پرستشگاه در بیابان میگه تمرکز کنیم. چیزی که شرط دادیم عملا یک خیمه پرستش بود. به موسا فرمان داده شد که این خیمه پرستش رو بسازه. پرستشگاه در بیابان نه تنها به قوم خدا نشان میداد که چگونه با پرستش به خدای قدوس نزدیک بشن بلکه اون جایی بود که کاهن و قوم اسرائیل با خدا ملاقات میکردند اینجا محلی بود که اونها از خدا مسیر و هدایت میگرفتند این پرستشگاه در بیابان نه تنها راجع به پرستش بلکه راجع به عیسی مسیح با ما صحبت میکنه این مفهوم حقیقی عیسی مسیح است و نجاتی که به وسیله او حاصل میشه عیسی در عهد جدید در جاهای بسیاری گفته موسا درباره من نوشته. احتمالا هیچ جای دیگری در عهد قدیم این حقیقت به این وضوع که در خیمه پرستش میبینیم مشاهده نشده. همین که به کتاب لاویان نزدیک میشیم اگر انتظار داریم که کتاب لاویان رو بفهمیم لازمه که ما این خیمه پرستش رو درک کنیم. کتاب لاویان در واقع کتاب مقررات خدمت بود. وقتی من مشغول به خدمت شدم کسی به من چیزهای عملی رو نگفته بود از جمله اینکه چطور مراسم تدفین رو به جا بیارم و یا مراسم عقد رو؟ بعضی از این چیزهای عملی رو من از اولین تجربیاتم وقتی اونها رو دیده بودم یاد گرفتم. وقتی اولین مراسم تدفین رو انجام دادم، من در تمام عمرم فقط یک مراسم تدفین دیده بودم و اون هم مراسم مادرم بود. یکی از دوستان شبانم به من کتابچه مقررات خدمت رو داد. هرگز فراموش نمی کنم که اون کتابچه چقدر برام مزیز بود. در طول چند سال به نظر میرسید که خیلی کهنه شده برای اینکه من خیلی از اون استفاده میکردم. اون قدم به قدم به من می‌گفت که چطور مراسم تدفین رو به جا بیارم چطور مراسم ازدواج و بسیاری از چیزهای دیگر رو کتاب لاویان هم در واقع یک چنین چیزیه کتاب لاویان به کاهنینی که مأمور خدمت در خیمه پرستش بودن چگونگی خدمت رو نشون میداد. قبل از اینکه به کتاب لاویان نگاهی بندازیم موئلم که درباره خیمه پرستش فکر کنیم وایلام که به بعضی از های عهد جدید در آموزههای عهد قدیم درباره خیمه پرستش فکر کنیم. در سرتاسر سر کتاب مقدس شما میتونید سوالاتی از این قبیل بپرسید. اون چی میگه؟ معنی اون چیه؟ مفهوم اون برای من چیه؟ این در مورد هر کتاب از کتاب مقدس، هر بابی در کتاب مقدس، هر آیه‌ای در کتاب مقدس صدق می کنه. و در خیمه پرستش هم صدق میکنه. خیمه پرستش چی میگه؟ اون به ما که در قرن 21 زندگی می‌کنیم چی میگه؟ اون برای ما در قرن 21 چه مفهومی داره؟ هیچ چیز؟ این در زمره چیزهایی است که ما ضمن بررسی کتاب مقدس میخواهیم ببینیم بقیه کتاب مقدس راجع به خیمه پرستش چی میگه. ما نمی خواهیم که تمامی تمثیلهایی رو که در جلسه قبلی ذکر کردیم تکرار کنیم، اما میخواهیم به بعضی از اونها مراجعه کنیم. یادتونه که خیمه پرستش شش تکه اساسی داشت؟ این لوازم داخل خیمه پرستش به شکل صلیب قرار گرفته بودند. پس در اون نمات پردازی ما می بینیم که خیمه پرستش از مسیح و از نجاتی که به واسطه او حاصل شد و از قربانی شدن بره بی ای بر روی صلیب با ما صحبت میکنه ما در جلسه قبلی به این نرسیدیم اما بین این مکان مقدس جایی که ست که از این اساسی قرار گرفته بود و قدس و لغداس جایی که صندوقچه عهد قرار داشت پرده بسیار زخمی بود. حتی در خیمه خوچه که پرستش این پرده از جنس بسیار محکمی ساخته شده بود. جوزفوس مورخ یهودی به ما میگه که اگر دسته ای از اسبان که مخالف جهت هم می نمیتونستن این پرده رو پاره کنن. سالها بعد وقتی معبد سلیمان با دقت و مهارت با همان الگوی خیمه پرستش ساخته شد، پرده مثل پرده تئاتر بزرگ بود. این یکی از بزرگترین معجزاتی در کتاب مقدس در رابطه با مرگ عیسی مسیح بود که اغلب بهش توجه نمیشه. در عهد جدید در انجیل گفته شده که وقتی عیسی بر صلیب مرد، اون پرده که بین مکان مقدس و قدس الاقداوس بود، به طور خارق العاده ای از بالا تا پایین پاره شد. در معبد سلیمان در اورشلیم وقتی عیسی بر صلیب مرد، در همان لحظه مرگ او این معجزه به وقوع پیوست. در متی باب 27 آیه 50 میگه عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی برآورد و روح خود را تسلیم نمود. در همان دم پرده محرابگاه از بالا تا پایین دو پاره شد. اون یکی از بزرگترین معجزات کتاب مقدس بود. در کتاب پیدایش ما خوندیم که وقتی انسان گناه میکنه یادتونه که پیدایش سه اون رو به همان گونه که بود و همان گونه که هست به ما میگه. بدترین نتیجه گناه انسان همانطور طور که بود و همان طور که هست جدایی بین انسان و خدا بود و راه حل این مشکل اساسی و آشتی این جدایی چیزی که مفهوم واقعی کتاب مقدس است و مفهوم این خیمه پرستش در بیابان هم مفهوم معبد سلیمان هم همینه مفهوم تمامی فرمهای پرستشی هم همینه خدا راه برگشت به او رو به ما نشون میده در پایان پیدایش سه میگه که راه بازگشت به درخت حیات با شمشیری آتشین محافظت میشد این تمثیل زیبایی هست که به ما میگه که فقط یک راه برای بازگشت به سوی خدا هست. اون راه به طور سمبولیک از شمشیر آتشین میگذره این فقط میتونه خود عیسی مسیح باشه یا کلام خدا که در جاهای دیگری از کتاب مقدس به عنوان شمشیر دودم از آن یاد شده. این تنها راهیه که انسان میتونه راه بازگشت به سوی خدایی رو که به وسیله گناه از او دور شده پیدا کنه. در واقع این پیغام اساسی خیمه پرستش در بیابان هست. مخصوصاً شما میتونید این رو در تفسیر خیمه پرستش در عهد جدید ببینید این اصل مطالعه کتاب مقدس رو به خاطر بسپارید بزرگترین تفسیر کتاب مقدس خود کتاب مقدس است مخصوصا زمانی تحقق پیدا میکنه که شما عهد جدید رو با توجه به عهد قدیم تفسیر میکنید حقیقت پویا دیگری در تفسیر عهد جدید بر مبنای خیمه پرستش در بیابان در عهد قدیم وجود داره اون حقیقت مربوط به این واقعیت هست که کل مفهوم این خیمه عیسی مسیح است و مفهوم تمامی این اساسیه ها هم همان عیسی مسیح است. مذبح برنجی مرگ او رو به تصویر میکشه، حوض پاکی از گناه رو که او آمد تا به ما بده به تصویر میکشه، او نور جهان هست او شمدان طلایی هست او نانی بود که از آسمان به زمین آمد تا ما رو تقویت کنه، در این میز نان تقدمه به تصویر کشیده شده. در مذبح بخور ما میبینیم که او کاهن اعظم است که همیشه برای ما شفاعت میکنه مفهوم همه اینها عیسی هست. مفهوم تمامی نقشه و الگوی خیمه پرستش عیسی هست. در کتاب عبرانیان درباره خیمه پرستش چیزی به ما گفته شده که شاید هویا چیزی هست که عهد جدید درباره خیمه پرستش به ما میگه کتاب ابرانیان سعی میکنه شکاف بین عهد جدید و عهد قدیم رو پر کنه چرا امروز ما حیوانات رو قربانی نمیکنیم وقتی شما الزامات عهد قدیم رو با الزامات عهد جدید مقایسه می‌کنید کاملا واضحه که الزامات خدا تغییر کرده الزامات الهی خدا در تاریخ روابط انسان خدا عوض شده خدا امروزه قربانی حیوانات رو طلب نمی‌کنه چرا او نمیخواد کتاب عبرانیان اون رو برای ما باز می‌کنه وقتی به بررسی کتاب عبرانیان در عهد جدید برسیم بیشتر در این بار صحبت خواهیم کرد اما خلاصش چیزی مثل اینه و این حقیقتی حیرت انگیزه در باب نهم کتاب عبرانیان نویسنده میگه این خیمه پرستش بر روی زمین فقط یک نشانه بود اون فقط کپی از خیمه پرستش دیگری بود که در ابعاد آسمانی وجود داره چیزی که باب 9 عبرانیان به ما میگه اینه که در آسمان یک خیمه پرستش هست این خیمه پرستش آسمانی از مسالح مادی ساخته نشده مسالح آسمانی هستند مصالحی روحانی خیمه ای که خدا گفت موسی بسازه دقیقاً یک نمونه مرئی و ملموس از نمونه آسمانی نامرئی و ناملموس آن هست که در عبرانیان باب نه شهر داده شده وقتی عیسی بر صلیب مرد پرده معبد سلیمان از بالا تا پایین دو پاره شد نویسنده کتاب عبرانیان میگه وقتی عیسی بر صلیب مرد چیزهای مهیج یه هم اتفاق افتاد یادتونه که هر سال یک بار کاهن اعظم به داخل قدس لغداس میرفت او خونه قربانی برای گناهان قوم رو به داخل می وقتی کاهن اعظم وارد قدس الاقداس میشد، تمامی مردم در اطراف خیمه پرستش در بیرون اجتماع میکردند. به همون ترتیب، وقتی عیسی بر سلیب مرد، او کاهن اعظم شد و در آسمان او وارد خیمه پرستش آسمانی شد. در مذبح برنجی، در خیمه آسمانی، او خودش را به عنوان قربانی نهایی و کامل به جای تمامی آن قربانی ها عرضه کرد. عیسی به درون حوض رفت و پاکی ابدی رو میسر کرد. در کتاب مکاشفه وقتی ما بر دور تخت جمع میشیم و به خدا نزدیک میشیم کتاب مکاشفه به طور سمبولیک میگه که اون حوض حوض آب نیست اون دریایی از بلوره به عبارت دیگه در واقع آب جامد شده چون که پاکی ابدی هست وقتی عیسی بر سلیب مرد و به خیمه آسمانی رفت او پاکی ابدی پدید آورد او پاکی ابدی رو برای ما تضمین کرد که روزی در جایهای آسمانی به ما داده خواهد شد بعد ایسا ادامه میده و به قدس قداس میرسه. کتاب ابرانیان میگه که وقتی او وارد قدس در آن خیمه آسمانی شد، او خون حیوانی رو تقدیم نکرد. ایسا خون خودش رو یک بار و برای تمامی گناهان دنیا عرض کرد. بر اساس ابرانیان، اهمیت خیمه زمینی به خاطر خیمه آسمانیه. در عهد قدیم، خیمه پرستش فقط سمبولی ظاهری بود. اون فقط بیان مرئی و ملموس واقعیتی روحانی بود که وقتی ایسا بر صلیب مرد در حضور خدا به وقوع می پیوست وقتی که کتاب ابرانیان رو می خونید، این سوالات رو بپرسید اون چی میگه معنی اون چیه؟ معنی اون برای من چیه نویسنده ابرانیان میگه چیزهای واقعی در آسمان است و آنچه اینجا بر روی زمین هست فقط سایه ای از آنهاست و با چیز بسیار ارزشمندی پاک شدن. شدهاند ایسا شخصا وارد آسمان شد که خود را به صورت دوست ما ظاهر سازد او در خیمه پرستش زمینی این کار رو نکرد. اون خیمه فقط سایه ی از معبد آسمانی بود. او یک بار و برای همه آمد که قدرت گناه رو با مردن به خاطر ما تا ابد دور کنه. دانشجویان عزیز یعنی الان ما میتونیم مستقیم وارد قدس الاغداس بشیم جایی که حضور خدا هست. چون خون ارزشمند عیسی بر بی عیب بدون نقص نجات رو برای ما تضمین کرده. نه ایسان نجات ما رو تضمین کرده، بلکه این کار رو کرده، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوس بر ما گشوده شده است و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل به حضور خدا نزدیک شویم در حالی که دلهای من از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهای من با آب پاک شسته شده است. ابرانیان می‌بینید نویسنده ابرانیان چی میگه؟ چیزی که او میگه دقیقاً اینه. برای انسان گناهکار آسان نیست که به حضور خدا بره. به خاطر اون جدایی، اون جدایی بین خدا و انسان در پیدایش سه آشتی کردن برای انسان گناهکار به این سادگی ها هم نیست. بعد از اینکه انسان گناه کرد، خدا این نقشه عظیم نجات و بازخرید رو بلافاصله به موقع اجرا گذاشت که به وسیله اون اون جدایی روحانی از میان برداشته میشد حالا اون جدایی توسط مرگ عیسی از میان برداشته شد اما نه تنها این جدایی از میان برداشته شد نه تنها ما نجات پیدا کردیم بلکه به حضور خدا دسترسی پیدا کردیم در خیمه پرستش گناهکار فراتر از دروازه نمیرفت یک کاهن او رو ملاقات می کرد و به او نشون میداد که چطور حیوانی رو قربانی کنه و چطور او را رو بر روی مذبح برنجی بذاره و غیره. بعد گناهکار منتظر می‌شد و کاهن به جای او به حضور خدا میرفت. رفت. گناهکار نمیتونست به حضور خدا بره. فقط کاهن میتونست به حضور خدا بره و برای گناهکار شفاعت کنه. اما همه اینها تکمیل شد و با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب به کناری نهاده شد. وقتی عیسی مسیح بر صلیب مرد، او مفهوم قربانی حیوان رو تکمیل کرد. و وقتی عیسی مسیح بر صلیب مرد، برای من و شما این امکان رو فراهم کرد که مستقیم به حضور خدا بریم. همیه اینها با این معجزه حرتانگیز در کتاب مقدس شرط داده شده من فکر نمی کنم ما این معجزه رو درک کرده و از اون قدردانی کرده باشیم اگر کرده بودیم خیلی بیشتر از این به حضور خدا می رفتیم خدا بالاترین قیمت رو پرداخت تا امکان نجات من و شما رو فراهم کنه خدا قیمت گذافی پرداخت که این امکان رو فراهم کنه تا من و شما به حضور او بریم او رو بپرستیم و با او حرف بزنیم به این دلیل که نویسنده عبرانیان وقتی معنی این کلام را به ما میگه این همه به هیجان میاد پس ای برادران از آنجا که به خون ایسا میتوانیم آزادانه به مکان اقدس وارد شویم یعنی راهی تازه و زنده که میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده، و بدنهای من با آب پاک شسته شده است بیایید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم زیرا که وعده دهنده امین است این کاربردی زیبا و پویا در عهد جدید از اهمیت خیمه پرستش در کتاب لاویان است حقیقت بزرگ کتاب مقدسی کفاره جانشین به این معنی که برای بخشیده شدن گناهان ما مسیح به جای ما متحمل رنج و مجازاتی شد که حق ما بود، این فکر در عهد جدید بود اما به طور وسیع و روشنی در کتاب خروج و لاویان شرط داده شده. کاربرد پویای دیگری از خیمه پرستش در بیابان همونطور که بارها در عهد جدید میبینیم چیزی مثل اینه. اگر شما یک ایماندار حقیقی و پیرو عیسی هستید، آیا نمیدانید که بدنهای شما معبد خدای زنده است؟ این حقیقتی تکان دهنده در کتاب مقدسه. حقیقتی بسیار پویا. آیا نمیدانید که روح خدا در شما زندگی میکنه؟ کنه؟ کسی که معبد او را آلوده کنه خدا نابود خواهد کرد. چون معبد او مقدس هست و شما در واقع اینچنین هستید. این کاربرد قدرتمندی از خیمه پرستش در بیابان هست. ببینید خیمه پرستش جایی بود که خدا در آن ساکن بود. حضور قدوس او به طور سمبولیک فقط در صندوق آه در قدس الاقداص بود رسیدن به حضور او مسئله بسیار جدی بود فقط کاهن اعظم سالی یک بار وارد قدس می میشد جایی که تابوت عهد قرار داشت تابوتی که حضور خدا در آن ساکن بود بهش فکر کنید که چه حقیقت تکان دهنده بود که به یک یهودی که با چنین طرز تفکری پرورش شده بود بگید حالا تو معبد خدا هست پتروس رسول در رسالش به ما میگه که چیزی نمانده بود که بمیره او مرگش رو اینگونه شرح میده او میگه چیزی نمانده بود که معبدم را ترک کنم او به بدن خودش به عنوان معبد شاره میکنه چون کاربردش اون بود اگر ما معبد خدا هستیم خدا در ما زندگی میکنه پس ما معبد جدید امروزی او هستیم حضور خدا عملا در ما زندگی میکنه پولس رسول سعی داره که این حقیقت رو به قرانتیان بفهمونه کسانی که درگیر گناهان جنسی بودند پولس رسول به آنها گفت بدن شما برای بی افتی نیست بلکه برای خداوند است آیا نمیدانید که بدن‌های شما معبد روحال القدس است و خدا در شما زندگی میکنه. اگر شما هر چیزی را درباره نزدیک شدن به خیمه پرستش در بیابان و نزدیک شدن به خدا توسط خیمه پرستش بدونید این حقیقت قدرتمندیه. در کولوسیان 1.27 پولس رسول به ما میگه معنی داشتن مسیح در بدنهای من چیه؟ او میگه کسانی هستند که خدا تصمیم گرفته که به اونها رویایی از اسرار نقشه های باشکوهش در مورد قوم ها بده. سر او دقیقا اینه. مسیح در شما. بله، مسیح در شما امید چیزهای باشکوه آینده رو به همراه داره. مسیح در شما نه تنها یک معجزه است؟ به این معنی که خدا درون شما زندگی میکنه بلکه محرکی است که چون مسیح در شماست تمامی نیروی مورد نیاز برای گام برداشتن در مسیر خانگیتون رو دارید خدا قادر است که فیزش رو به فراوانی بر شما بریزه تا اینکه همیشه برای هر چیزی کفایت لازم رو داشته باشید تا بتونید تمامی کارهای نیک رو به فراوانی انجام بدید این تحقق پیدا میکنه چون مسیح در شماست چون مسیح درون شما زندگی میکنه وقتی این سوال رو میپرسیم آیا کاربرد واقعی برای این خیمه پرستش برای ما که در قرن 21 زندگی می‌کنیم وجود داره؟ به گمان من جوابش یک بلهی مؤكد است. من این چیزی رو که داوود به عنوان رفتن به حضور خدا شرح میده دوست دارم. در مزمور صد داوود که پرستنده‌ای بزرگ بود و خودش شاه بود، گفته که رفتن به حضور خدا مانند رفتن به حضور یک سلطانه. اگر با یک شاه قرار ملاقات داشته باشید چطور در سر قرارتون با این شاه بزرگ حاضر میشید؟ داوود میگه شما با عبور از درهای قصر او شروع میکنید. وقتی که از درها وارد میشید، بعد شما احتمالا از راهروهای طویل یا حالها یکی بعد از دیگری عبور میکنید، درها باز میشن، شما وارد راهروی طویل میشید، شاید سربازانی در دو طرف صف کشیدن. هرچه سلطان مقتدرتر باشه، راهروها طویلتر هستند و هرچه سربازان باشند، بیشتر باشن، باش دارند تا اینکه بالاخره آخرین در به حضور شاه باز میشه شما خیلی تحت تاثیر قرار میگیرید که مردی که به ملاقاتش میرید مرد بسیار مهم میه. بر اساس این تشبیه ادبی داوود در مزمور 100 گفته آمدن به حضور خدا مانند آمدن به حضور یک سلطانه وقتی به حضور خدا میایید داوود میگه گویی ملاقات رسمی شما با خدا با عبور از دروازه شکوه شروع میشه یعنی اینکه برای هر چیزی که میتونید فکرش رو بکنید که ممنون خدا هستید، شروع به شوق گذاری کنید. بعد داوود میگه که درهای شوق گذاری منتهی به تالار ستایش میشه. شما شاید در تالار ستایش مدتی توقف کنید. بسیاری از مردم خداشناس میگن همون دری که به حضور خدا باز میشه در ستایشه. بعد داوود گفته دری که بالاخره به حضور خدا باز میشه در سرود خاندنه. ما به حضور او با سرود ها میاییم. در اخت قدیم جاهایی رو میبینید که نبی نمیتونست نبوت کنه از این رو میگفت برای من یک نوازنده حاضر کنید و اونها براش یک نوازنده حاضر می کردن. نوازنده می اومد و چنگش رو می نبوت. بعد نبی شروع به معظه می کرد. او به خاطر پرستش با موسیقی شروع به نبوت می کرد اصلا موسیقی چیه؟ به گمان من موسیقی موجزه بزرگیه که خدا به ما داده که به وسیله اون میتونیم چیزهایی رو بیان کنیم که به روش دیگری قابل وصف نیستند داوود میگه که ستایش خدا با موسیقی عملا میتونه ما رو به همون حضور خدا هدایت کنه داوود در مزمور 100 میگه وقتی به حضور خدا میرسید چیزهای خاصی هستند که در حضور خدا خواهید فهمید شما میفهمید که او خداست میفهمید که او نیکوست میفهمید که او شبانه و شما گوسفندان هستید وقتی در حضور خدا پرستش میکنید چیزهای زیادی رو میفهمید و وقتی به درک واقعی از این چیزها رسیدید میفهمید که او میخواد حقیقتش در تمامی نسل و در تمامی سرزمین دنیا ساکن بشه بعد او میگه خدا رو با شادی خدمت کنید میگه بروید و خدا رو با شادی خدمت کنید این شرح زیبایی از رسیدن با حضور خداست ما چطور میتونیم اینجا انجام بدیم و نتیجه اون در زندگی ما چیه؟ به همون ترتیب به گمونم ما میتونیم از این خیمه پرستش کوچک در زمانهای رازگاهان، به عنوان راهی برای رسیدن به حضور خدا استفاده کنیم. وقتی به مسائل شرعی نگاه میکنیم، وقتی که به شریعت موسی نگاه میکنیم، همونطور که میبینیم شریعت مکتوب میکشه. ما امروز زیر شریعت مکتوب نیستیم. عیسی آمده و حالا ما زیر فیض او هستیم. روح شریعت همیشه حیات میده و روح شریعت همیشه منظوری و مفهومی داره. اگه به خیمه پرستش در بیابان بیایید، تا جایی که به خیمه پرستش مربوط میشه، دیگه نباید نگران شریعت مکتوب باشید. برای اینکه عیسی اون رو به کمال رسون شریعت مکتوب بر حسب خیمه پرستش در بیابان دیگر ضرورتی نداره. اما آیا روح شریعت هنوز تا جایی که به خیمه پرستش مربوط میشه وجود داره؟ یقیناً وجود داره اگر صبح از خواب بیدار بشید من اینو توصیه میکنم اگر صبح از خواب بیدار بشید و بخواهید که رازگاهان داشته باشید زمانی برای پرستش زمانی برای رسیدن به حضور خدا قبل از اینکه بروید و زندگی روزانه‌تون را رو شروع کنید سعی کنید از طریق این خیمه پرستش فکر کنید تصور کنید که در مقابل مذبح برنجی ایستادید جایی که حیوانات قربانی میشند از سمبلی از مصلوب شدن عیسی مسیح بودند و به این حقیقت که عیسی به عنوان بر ری بی به خدا بر روی صلیب مرد و قربانی گناهان شما و تمامی دنیا شد، ایمان دارید. اگر تا حالا این کار نکردید، حالا این کار انجام بدید. کافیه که به عیسی برای بخشش گناهانتون اعتماد کنید، بعد خدا رو برای اینکه شما را رو بر روی صلیب عیسی بخشید شک کنید زیرا او قربانی کامل بود. حالا در این مسجد به حوض فکر کنید جایی که لازم دست ها و پاهاتون رو بشویید جایی که لازم مرتبا پاک بشید همونطور که خداوند به پتروس گفت وقتی که حمام کردی به حمام دیگری نیاز نداری وقتی پاهات کثیف میشه لازمه که فقط پاهات رو بشوری همه ما به پاک شدن مداوم نیاز داریم پس اون پاک شدن مداوم رو مرتبا انجام بدید آیا چیزهایی در زندگیتون هستند که کثیفند که خدا رو خوشنود کنند، اونها رو نزد خدا اعتراف کنید از اینها برگردید و پاک بشید بعد به طور مجازی وارد مکان مقدس بشید و در مقابل شمدان بیستید و خدا را به خاطر مکاشفاتش شک کنید و خدا رو شک کنید که شما را در تاریکی رها نکرده کسانی در دنیا هستند که دست چپشون را از دست راست تشخیص نمیدند یک کلمه از کتاب مقدس نمیدونند کسان خیلی خیلی زیادی هستند که امروزه در تاریکی هستند خدا رو شک کنید که شما رو بدون نور رها نکرده و شما کلام او رو دارید و میتونید از کلام او بشنوید و یاد بگیرید. بعد خودتون رو به طور مجازی در مقابل میز نان تقدمه تصور کنید و او رو شک کنید که تمام نیازهای شما رو محیا میکنه. اقرار کنید که او منبع هر تک نانی که شما به دست میارید و هر چیز دیگه که دارید. به هر روشی که نیازهاتون براوردی میشه اقرار کنید که او تنها کسیه که اون نیازها رو برآورده میکنه و با سپاسگزاری اقرار کنید. بعد وقتی به مذبح بخور فکر میکنید به معجزه دعا فکر کنید. وقتی زمانی رو برای دعا اختصاص بدید روزتون رو با دعا در حضور خدا شروع کنید. بعد وقتی به قدس و لقداس فکر میکنید بذارید شما رو به چالش بکشه که به یادتون بیاد که چیزی به نام حضور الهی خدا است که نه تنها روح قدوس خدا در شماست بلکه این امکان که میتونید در هر کجا هستید در حضور خدا باشید. آیا تا حالا در حضور الهی خدا بودی؟ تا حالا شده که در حضور خدا بودید و متوجه نشده باشید؟ آیا در حضور خدا بودید و متوجه شده اید؟ این مفهوم کلی قدس القداس هست. چطور باید دعا کنیم تا خدا ما رو از طریق این پله ها به پرستش و دوستی با خدای مهربان هدایت کنه؟ در نتیجه وقت گذاشتن بیشتر در حضور او ما وارد حضور الهی خدا میشی کتاب مقدس میگه که موسی گفته او خلوت گزید تا او رو ببینه و میگه که خداوند دید که موسا خلوت گزیده و خداوند با او رو در رو صحبت کرد اونطور که کسی با دوستش صحبت میکنه. موسا به مدت چهل سال خلوت گزید نمیدونم شما تا حالا برای دیدن خدا خلوت کردی ارمیا نبی این کلام رو به ما میده شما به دنبال من خواهید گشت و وقتی که با تمام قلبتون به دنبال من بگردید، مرا خواهید یافت. عیسی گفته: بطلبید و به شما داده خواهد شد. بجویید، خواهید یافت. بکوبید، برای شما باز خواهد شد. زیرا هر که به می گیرد و هر کسی که بجوید می یابد و هر کسی که بکوبد برایش باز کرده خواهد شد. دانشویان عزیز، اگر شما نگرفتید و نیافتید، اگر برای شما باز نشده، از خودتون بپرسید آیا اشتباهی در طلبیدن من بوده؟ آیا در جای اشتباهی دنبالش کشتهم؟ آیا به خطا کوبیده من ایمان دارم که باید خلوت بگزینیم تا خدا رو در قدس لقداس ببینیم اما اگه بخواهیم میتونیم بفهمیم که کاربرد واقعی زیادی برای این خیمه پرستش در بیابان هست این مهمترینشونه هنوز برای یک مرد یا زن گناهکار این امکان هست که به حضور خدای قدوس بیاد و عملا از راهی تازه و زنده که توسط خداوند ما ایسای مسیح محیا شده وارد حضور خدا بشه. آیا تا حالا به حضور خدای قدوس آمدید؟ عیسی میگه من راه، راستی و حیات هستم. هیچکس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید و ما این تصویر روحانی رو در خیمه پرستش میبینیم. خدا میخواد شما رو ملاقات کنه، با شما دوستی کنه و زندگی شما رو معبد خودش کنه. عزیزان متشکریم که عضوی از این مطالعه کتاب مقدس بودین. همونطور که درس به ما آموخت، ارادی خدا اینه که زندگی های ما معبد اون بشه. اما خدا ما رو مجبور نمیکنه. خدا میخواد که ما رو برکت بده و راههایی برای رسیدن به حضورش و پرستش رو فراهم کنه. اگه تا حالا قلبتون رو به اون ندادین، از شما دعوت میکنم امروز این کار رو بکنین. اگه زندگیتون رو به اون دادین دعای ما اینه که این درس در پرسش‌ها به شما کمک کنه دوستان تا برنامه بعدی ما خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا پدر آسمانی ما که ما رو دوست داره و فیضش بیش از حد نیاز ماست در هر جایی که هستین با شما ملاقات کنه تشویقتون کنه و به شما امید و جسارت بده که این هفته با چالش های پیش و رو مواجه بشین و شما رو در هر کار نیکو تقویت کنه.